تمام شب نعره گاب تازه نفسی که در کوچه های بیل میگشت همه را خواب کرده بود. بااس و خواهرش و اسماعیل که در خانه آنها مخفی بود، سرشان را از پنجره آورده بودند بیرون و استخر را نگاه میکردند و سیاهی کوچکی را که روی آب استخر این بر آنور رفت و بیلی های دیگر هم که نشسته بودند در آستانه پنجره ها استخر را نگاه میکردند و سیاهی بزرگی را، که توی کوچه ها میدوید و صدای گاو در می آورد. هوا که روشن شد، مشتی اصن عرق ریزان و نعرکشان دوان دوان از صحرا آمد طرف خانش و یک راست دوید طرف طبیده و خود را رساند دم آغل و لبه کاهدان را چسبید. مشتی توبا پنجره را باز کرد و رفت پشت بام طبیده و از سوراخ پشت بام نگاه کرد. مشتا را دید که کلش را توی کاهدان فرو برده پا به زمین میکووبد و نعره میکشد مثل گاو خودشان آن وقتها که مشتتین میخواست به صحرا ببردش. اسلام و خدا و مشتی جبار و عباس و موسرخه آمدند خانه مشتن پاپاق هم پشت سرشان. زن مشتن که جماعت را دید در رانیمه باز کرد و گفت، اومده رفته تو طویله صدای گاو در میاره، کت خدا گفت، خدا خودش رحم بکنه، عباس گفت، بریم ببینیم چه کار میکنه، اسلام گفت، حق داره، مشتی هر کار بکنه حق داره، اون دیگه از دست رفته نفله شده، زن مشتی شروع کرد به گریه، مردها رفتند و جمع شدند جلوی درپشه طبیله و مشتی را نگاه کردند که ایستاده بود روی چاه، و سرش را برده بود توی کاهتان و زمین را لگد می کرد. کت خدا گفت مشتی مشتی هستن نگاه کن ببین چی میگن. عباس گفت نگاه کن مشتی کت خدا میگه گاوت پیدا شده. اسلام گفت آهسته بگین تون تون نگین می بینین که حالش سر جاش نیست. عباس گفت مشتی هستن کت خدا اسماعیل برگشته و گاور رو پیدا کرده و ورده. مشیستن سرش را از توی کاهدان آورد بیرون صورتش خونی بود و چشمهای خسته و آشفتش در هدقه میچرخید دهانش پر بود از علف که میجوید مردها را نگاه کرد توی گلو رید و دوباره سرش را برد توی کاهدان عباس گفت اینجوری نمیشه باش حرف زد مشی عبار گفت یه جوری شده مشستن نشده؟ کت خدا صرفه کرد و گفت چرا اینجوری میکنه مشت اسلام؟ اسلام رفت تو فکر و گفت میترسن مشتی اصلا نفله بشه دیگه داره درست و حسابی گاو میشه موسرخه ترسید و عقب عقب رفت و گفت گاو اسلام گفت آره گاو کت خدا گفت چه کار بکنیم؟ اسلام گفت چه کار بکنیم؟ بریم تو شاید بتونیم یه کارش بکنیم عباس رو کرد به موسرخه و گفت، نه ترس بابا جان، گاو نیست، مشتی اصنه، مشتی اصنه بیا، بیا تو اسلام در طبیله را باز کرد، مردها تک تک رفتن تو، زن مشتی رفت پشت بام نشست و از سوراخ وسط بام خیره شد به مردها که همه در یک ردیف نشسته بودند کنار تیرک، روبروی مشتی خواهر عباس گندم پاک می کرد و اسماعیل نشسته بود جلو پنجره خانه خواهرش را نگاه میکرد و منتظر بود که ببیند مردها کی برمیگردند. خواهر عباس گفت: فکر می کنی دوباره حالش خوب بشه." اسماعیل گفت: «خدا میدونه. اما من میدونم که مشیاسا گاوشو خیلی بیشتر از خواهرم دوست داره." خواهر عباس گفت: «بیلی ها همهشون اینجورن. اسماعیل گفت: من دیگه میتونم پاشم برم. مشتاً که نیومد بیرون بگرده منو پیدا بکنه. خواهر عباس گفت: حالا شله درست میکنم، بخور و بعد برو. اسماعیل خندید و گفت: شله نخورم نمیذاری برم؟ خواهر عباس گفت: شله تو بخور بذارم بری. اسماعیل خندید و چیزی نگفت. خواهر عباس هم چیزی نگفت. گندم رو که پاک کرد و تمام کرد و بلند شد که برود پرسید: مشت اسماییل، تو کی میخوایی زن بگیری؟ موات حسابی سفید شده ها؟ اسماییل گفت، صبر که حال مشتسن خوب بشه، اون وقت اون میفرستم دارید خواهر عباس سرخ شد و خندید و گفت، شله دوست داری نه؟ تخم ماخ چی؟ مشتی برگشت و مردها را که گوش تا گوش جلوی تیرک نشسته بودن تماشا کرد. حروفه له شده از لب و لوچهش آویزان بود. اسلام صرفه کرد و در حالی که مبازه به حرفهایش بود گفت مشتسن سلام علیکم اومدیم ببینیم دماغت چاقه احوالت خوبه؟ مشتسن همچنان که نشخار میکرد گفت من مشتسن نیستم من گاوم من گاو مشتسن هستم موسرخه ترسید و خود را عقب کشید کت خدا گفت اینجوری نگو مشتسن تو خود مشتی هستی نیستی؟ مشتی پا به زمین کوبید و گفت نه من نیستم من گابر مشتی هستم مشتی جبار گفت مشتی اصن این حرفو نزن اگه فروسیا بفهمن به میان میدوزنه تا عباس و کت خدا خندیدند اسلام چشم رفت مصرخه خود را عقبتر کشید و پشت سر اسلام قایم شد مشتی اصن نشخار کرد و گفت نه، نه پروسیا نمیتونن بیان اینجا، مشتی نشسته بالای پشت بام و مواظب منه کت خدا گفت، مشتی تو رو به خدا دست فردار، این دیگه چه گرفتاری است که برای بیل درست کردی، تو گاو نیستی، تو مشتسنی مشتی پایش را زد به زمین و گفت، نه من مشتسن نیستم، مشتسن رفته سه عملگی، من گاو مشتسنم شد خدا گفت لا اله الا الله آخه تو چه جور گاوی هستی ماشستان از گاوی چی داری آخه دومت کو ماشی جبار گفت آها دومت کو سومت کو مشتی اصن یک دفعه خیز برداشت دیوانوار دور طویله میدوید و شلنگ تخته میانداخت و هر چند قدم کلش را میزد به دیوار و نعره میکشید کشید تا رسید جلوی کاهتان و همان جایی ایستاد چند لحظه سینه‌اش بالا و پایین رفت بعد سرش را برد توی کاهتان و دهنش را پر کرد از علف و آمد ایستاد روی چاه همان جایی که اسلام کاه رویش پاشیده بود و با صدایی که به زحمت از گلو خارج میشد گفت مگه دوم نداشته باشم نمیتونم گاو باشم مگه صم نداشته باشم گاو نیستم مگه بیدوم قبولم نمیکنید و با پا شروع کرد به لگت کردن زمین اسلام گفت گاو مشتسن گوش کن ببین چی میگم دیروز صبح آفتاب نزده زن مشتسن و لب استخر رو گریه کرد که گاو مشتسن افتاده و مرده منو کت خدا و اسماعیل و این بچه اومدیم زیر پای تو رو همون جایی که هستی کندیم و گاو مشتسن رو انداختیم اون تو اگه تو گاو مشتسن هستی که الان باید تو اون چاه باشی و اگه نیستی که خود مشی مگه نه؟ مجدی دوباره شروع کرد به دویدن دور طویله این دفعه تندتر و عصبانیتر. هر هرچه توی دهنش بود توف کرد بیرون و دست گذاشت به نعره آی مجدی اصن آی, آی مجدی بیا اینجا پروسی ها این تو و میخوان منو بدزدن میخوان منو ببرن پروس میخوان سرمو ببرن بینلازن تو چاه آی مشیع اسد آی مشتی اسد مردها بلند شدند و ایستادند اسلام گفت خب خب گاب به اسن ما دیگه میریم ما پروسی نیستیم من اسلام هستم میرم که خداست این دو تام عباس و مشیع جبار هستند اون بچه‌ام که میشناسیش ما داریم میریم تو بخواب تو طویلت چیزی دلت میخواد برات بیارم مشیع آرام و خوشحال شده آهسته شروع به نشخار کرد و گفت برام علف بیار برام یونجه بیار برام کاه بیار برام آب بیار آب. و بعد دست گذاشت به نعره و نعر که گاو تشنه میتواند سر بدهد شب که از نصف گذشت سه نفر پروسی از ده آمدند بیرون با تنابهایی که به پشت انداخته بودند و کارت‌هایی که به کمر داشتند پروسی اول گفت کدوم طرف بریم؟ پروسی دوم گفت بریم بیل پروسی سوم گفت آره بریم اونجا بریم بیل پروسی اول گفت بریم اونجا چه کار؟ تو بیل که چیزی گیرمون نمیاد پروسی دوم گفت امروز تو خاتون آباد میگفتن که گابه مشتسن مرده پروسی اول گفت چه کارش بکنیم پروسی دوم گفت بریم پوستشو میکنیم پروسی اول گفت مگه خودشون پوستشو نکندن؟ پروسی دوم گفت تو خاتون آباد میگفتن که پوستشو نکنده انداختنش دور پروسی اول گفت پس بریم تا جونوری سراغش نرفته خودمونو برسونیم پروسی دوم گفت بریم بگردیم پیداش کنیم پروسی سوم گفت راستی تو جامیشان یکی به هم گفته که گاوه هنوز تو طویله است. پروسی اول گفت چه بهتر؟ را بیفتیم. پروسی دوم و سوم هم گفتند بریم. هر سه نفر با تنابها و کارتها از بیراه زدند به بیل. پروسی ها به بیل که رسیدند هوا تاریک تاریک بود. آنها کارتها را کشیدند و از کنار باغ بابی خزیدند توده پاپاخ که روی دیوار باغ خوابیده بود سرش را بلند کرد و تا سیاهی ها را دید زوزه بلندی کشید و پرید پایین خود را رسان جلوی خانه اسلام و زمین را پنجول کشید اسلام که بیخوابی زده بود به سرش و از سوراخ پستو خانه همسایگی روبرو را نگاه می کرد بلند شد آمد لب پنجره پاپاخ دم تکان داد و ساکت شد اسلام خشخش پروسی ها را شنید و خودش را کنار کشید و پشت لبه پنجره قایم شد. مشتی سفر سرش را از سوراخ پشت بام آورد بیرون و استخر را تماشا کرد. خواهر عباس و اسماعیل که پشت دیوار قایم بودند خود را بالا کشیدند. پروسی ها مثل سه شبه تیره از استخر پیش می آمدند. اسمایل گفت میبینی؟ خواهر عباس آهسته پرسید. اینا کی هستن اسماعیل آب دهنش را پایین داد و گفت پروسیا پروسیا خواهر عباس با ترس پرسید پروسی و خواست جیغ بکشد که اسماعیل دهنش را با دست گرفت آن وقت خواهر عباس دلا دلا از حاشیه دیوار فرار کرد و رفت به خانهشان و عباس را که کنار پنجره خوابیده بود تکان داد و گفت عباس عباس پروسی ها ریختن توی ده عباس بلند شد و نگاه کرد پروسی ها پیچیدن توی کوچه عباس و اسماعیل چوب به دست به کوچه که رسیدند اسلام و پسر مشی سفر هم دگنک به دست پاورچین پاورچین پیش می مشی جبار و مشتی بابا هم پیداشان شد و یلی ها راه افتادند پروسی ها کارد به دست به خانه مشتی حسن نزدیک شدند و ایستادند پروسی اول گفت سر و صدا میاد پروسی دوم گفت آره صدای نفس نفس یک گاو میاد پروسی سوم گفت پس گاوه زنده است پروسی اول گفت تناب‌ها رو وا کنین دهنشو میبندیم و می کشیمش بیرون پروسی دوم و سوم تنابها رو باز کردند پروسی اول گفت شما برین تو من اینجا مواظبم کاردش رو محکم گرفت و ایستاد پروسی اول و دوم همین که برگشتن عقب را نگاه کنند و یلی ها را دیدند که چوب به دست پشت سرشان ردیف شدند پروسی ها تکانی خوردند و سر جاشان ماندند پروسی اول هم کارد به دست برگشت و همان جور ماند زن مشتیاسن که پشت بام طبیله خوابیده بود از خواب پرید و نشست مشتی از توی طبیله شروع کرد به ناله و یلی ها چوب به دست حمله کردند پروسیها پریدن روی تله های پشت طویله و از آنجا به پشت بام خانه مشتی و قبل از آنکه بیلی‌ها برسند تناب ها را انداختند و کارت‌ها را بالا بردند. اسلام فریاد زد: این در برند. مردها با نعره حمله کردند. زن مشتی از وحشت جیغ کشید. مردها پیش از آنکه به پشت بام برسند پروسیها خودشان را انداختند توی باغ اربابی. و وقتی بیالی ها کنار دیوار رسیدند، پروسیها مثل باد از حاشیه بیل در بیراه گم شدند. کت خدا با فانوس آمد بیرون و مردها را چوب به دست روی بامها دید. با عجله آمد و تا اسلام را دید، تند تند پرسید: چه خبره؟ چی شده مش اسلام؟ اسلام گفت: هیچ، هیچ. پروسیها اومده بودند مشحسن را به آفتاب که زد اسلام با گاری پر یونجه از پشت باغ پیدا شد و آمد کنار استخر خواهر عباس نشسته بود کنار سنگ سیاه مردشوری و ظرف می شست. باد آرامی می آمد و برک های یونجه را تکان تکان می داد. اسلام سطل را از زیر گاری درآورد و از آب استخر پر کرد و گرفت جلوی دهان اسب. اسب شروع کرد به آب خوردن موز سیاه اسلام سرش را از پنجره آورد بیرون و نگاهی کرد و دوباره رفت تو اسلام سطل را آویزان کرد سیرگاری بعد رفت بالای چرخ و یک بغل یونجه تازه را که پیچیده بود توی گونی برداشت و آمد پایین از کوچی اول رد شد و رسید به خانهٔ مشتیحسن زن مشتیحسن نشسته بود روی بام طویله و صورتش را پوشانده به خواب رفته بود اسلام نربچه طویده را کنار زد و یونجاها را ریختوب و برگشت. صدای صرفهای مشتی بابا که تازه از خواب بیدار شده بود از دور شنیده میشد. شد. غروب که شد اسلام با گاری خالی از پشت باغربابی پیدا شد و آمد کنار استخر. زنها نشسته بودن روبروی خانه بابا علی و پسر مشتی سفر با چوب بزرگی داشت لاشه مرغی را از استخر بیرون میکشید. اسلام گاری را برد جلوی خانهش بوز سیاه آمد بیرون و اسلام را و بعد گاری را نگاه کرد و رفت پیش اسب. اسب سرش را آورد پایین و چشمهایش را بست اسلام سطل خالی را از چنگال زیر گاری درآورد و رفت لبه استخر سطل را پر کرد از کوچه اول رد شد و رسید به خانه مشتیحسن زن مشتیحسن نشسته بود پشت بام طویله صورتش را پوشانده به خواب رفته بود. اسلام در طویله را کنار زد و رفت تو. باد آرام و سردی می و ناله گاو خسته ای را با خود بیرون میآورد. اسلام و کتخدا خدا و مشری جبار و عباس و موسرخه توی قبرستان نشسته بودن کنار شیر سنگی. کت خدا گفت، حالا چه کارش بکنی؟ عباس گفت یه کاریش باید بکنی. مشری جبار گفت دیگه حرفم که نمیزنه اسلام گفت حرفم که باش میزنی صدای گاو در میاره موسرخه گفت سپون گاوارو خیلی زود یاد گرفته کت خدا چشم گره رفت موسرخه ساکت شد و خود رو عقب کشید مشری جبار گفت همشم یونجه و علوفه میخوره اسماعیل گفت میترسم که دل رودش زخم بشه کت خدا دوباره صرفه کرد و گفت چه بکنیم مشتی اسلام؟ اسلام گفت ببریمش شهر اسمایل گفت که چه کارش بکنیم؟ اسلام گفت باید ببریمش مریسخونه ما که زورمون نرسید شاید اونا حالیش بکنن که خودش و گاب نشده مشتی جبار گفت با چی ببریمش؟ اسلام گفت با گاری من؟ موسورخه گفت، اون سوار گاری نمیشه، تا سر گاورون نباری که نمیتونی سوار گاریش بکنی. اسلام برگشت و به موسورخه گفت، اگه سوار گاری نشه، اون وقت پای پیاده راه میفتیم و میبریمش. مشی جبار گفت، حالا اومدیم و بردیم شهر و مریض خونه قبولش نکرد، اون وقت چه کار کنیم؟ اسماعیل خندید و گفت، راست میگه. اگه گفتن که گابا رو قبول نمی‌کنیم چی؟ چی؟ کتخدا گفت مشتی اسلام بهتر می دونه مشتی اسلام هرچی بگه باید بکنیم مشتی جببار صرفه کرد و گفت اگر قبولش نکردن بر گردونیم اینجا کتخدا گفت تو چی میگی گی مشت اسلام؟ اسلام گفت آره سه نفری می بریم شهر کتخدا گفت کدوم سه نفر؟ اسمایل گفت سه نفری که بتونن از پسش بر بیان اسلام گفت مشتی بابا باش خوب نیست اون نمیاد کت خدا گفت مشدی بابا نیاد عباس گفت اونا رو بگو که میان اسلام گفت من و کت خدا و مشتی جبار سه نفری میبریمش کت خدا فکر کرد و گفت من که میام تو چی مشتی جبار تو هم میای مشی جبار گفت البته که میام زن مشی هم بیاد خونه من که ایالم تنها نمونه عباس گفت راست میگه تازه عروس را نباید تنها گذاشت کت خدا گفت پس کارها درست شد اسلام گفت حالا بلندشیم بریم سه تا تناب پیدا کنیم هوا که تاریک شد میریم سر وقتش کت خدا گفت خیلی خوب هوا که تاریک شد میاییم جلو طویله، مشتی جبار صرفه کرد و بلند شد، دیگران هم بلند شدند. هنوز آفتاب نرفته بود و خیلی مانده بود که هوا تاریک شود. هوا که تاریک شد، سه مرد بیلی از خانه هاشان آمدند بیرون، با تنابهایی که به پشت انداخته بودند و بسته نان که زیر بغل گرفته بودند. جلوه خانه مشتی اصن که رسیدند توی تاریکی هم دیگر را پیدا کردند اسلام گفت اومدی؟ کت خدا گفت آره اومدم مشتی جببار گفت منم اومدم اسلام برگشت و از مشتی جبار پرسید به زنش گفتی؟ مشتی جببار گفت آره گفتم اما قرار شد تا مشی اصن را بردیم زنش بره خونه من اسلام گفت از کارا رو شده، نشده؟ زن مشتی حسن پنجره را باز کرد آمد پشت بام طویله و فانوس روشنی هم با خدا ورد. کت خدا گفت، مشتی را میبریم. زن مشتی شروع کرد به گریه و دوزانو نشست پشت بام. اسلام گفت، بریم تو. مشتی جبار در طویله را باز کرد. هر سه با احتیاط رفتن تو. زن مشتی همانطور که نشسته بود، فانوس را از سوراخ پشت بام آویزان کرد پایین. مردها در روشنایی فانوس، مشیاسن را دیدند که افتاده جلوی کاهتان و به خواب رفته. ته دره در توی تاریکی، سه مرد که گاو را پیچ کرده بودند، کشان کشان می‌بردند طرف جاده. یکی از مردها جلوتر می رفت و تناب را می کشید و دو مرد دیگر هلش می دادند. گاو با جسته کوچکش مقاومت می کرد و مردها را خسته می کرد. سه مرد پروسی کارد به کمر از قله کوهی خم شده بودند و آنها را تماشا می کردند. نزدیکی های قروب اسلام و کت خدا و مشتی جبار برگشتند به بیل صدای دایره و دو هل از توی ده بلند بود مردها نشسته بودند کنار استخر رو چپغ می کشیدند مشتی بابا تا آنها را دید بلند شد و آمد و به اسلام گفت کجا هستی مشتی اسلام؟ بادو بادو سازتو تو بردار بیا برو خونه عباس اسلام پرسید سازم و وردارم برم خونه عباس چه کار بکنم؟ مشتی بابا گفت عروسی مش اسماییله خواهر اباس گرفته اسلام گفت من کار دارم خیلی کار دارم خوابم میاد مشتی بابا با تعجب پرسید چی نمیخوای ساز بزنی میدونی که برای عروس دومات شگون داره اسلام گفت میدونم اما ساز نمیزنم مشتی بابا چند قدم دنبال اسلام رفت و بعد برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. کت خدا و مشتی جبار از هم سوا شدند و به خانه هاشان رفتند. مشتی بابا گفت، های مشت اسلام، از مشت اصن چه خبر؟ اسلام گفت، مشتی اسن نرسیده به شهر. حرفش را خرد و رفت به خانهش و دراز کشید و از درب چیگه پستو خیره شد به بام همسایه. بوز سیاه اسلام از توی پستو آمد بیرون اسلام را نگاه کرد و از پنجره رفت بیرون پاپاخ که نشسته بود زیر بید بلند شد و همراه بوز اسلام از میان جماعت گذشت و رفت به کوچه اول که خلوت و خاموش بود تنها صدای گریه زن مشتی میآمد که تک و تنها با فانوس روشنش نشسته بود پشت بام طویله و صدای دایره و کف زدنها که رفته رفته نزدیک و تون تر و نعره درمانده گاو ناشناسی از درون یک طویله مخروبه